باسرين حوري خلينا نكتب قران بنيو حكمتك انو سيندا كتابي تشتهي من جمر نسيني حجر الكرياني شو بدنا علي مارکردنی کردنی دلیر سلین گگرانی و خوشویز سلاوتن لبید خوشحالین لبشی چوارده همی خوند نوی چشتی مجاوری هجاری مکریانی حتی نوالاتن فرمون لگلمان بن لتوريز توریز رادیوی پیش وری ها بود. ماریا درابو روجنیو ساعت یه مشخصه لسرپکینو برنامه تهیه خوانن هب. من بوقارش شما توریز و تاگم لمالي شازدخان خانم میر پانز بکریگرت شوونه تانی و روجانه هر لباینی و تانویج شوان بتنیا خریدی برنامه نیو ساعت یک دبوموده چوم دم خنده وا. پس در رج اوکارم کرد. رجک هاتن با ترنبیلکو بردمانه علاقه بو و کچوم چون لويبو پېښوري وتی یمنه زانین تو چې د خوینه یو به وسته برنامه کې ترجمه بکې یمې بیبینین وتم من موم زانی برنامه خوامانه، اگر برنامه ای و من کاری لناکم وتی اخر آخر زانی هر څاړه ساعتی سیتمن سیت من حقوقی ګوینډه یا وتم من له معاملې خو مزر پیدا کم او کارا بکسګيتر بس پېرن ایتیر تازه نتیم و رادیو توریز. هر لو رو بند داد، نمایش نامی آرشینمال آلانم کرده, کرده و شازده خانم که تورکی باش دزانی نریدی دکردم. ولی من نه او سرشانو. تسرشنو. با دوهم جار پیشواریم دید. منو ریه زی آذربایجان لنزیک توریز بو. پیشوا منیشی دگل خوی برد. لدمی نیو راجا خواردنده من شعری کم درباری برایتی کردو آذربایجانی خوانده کبو پیشواریان ترجمه دکرد. بلایو خوش حد. لیوانیک آبجوی جوی با دستی خوی بو هینم. ورم نگرد که عادتم با مشروب نیا. همه حسین خان لیم تو بو کچون لدستی پیشوری ور نگری. بلان فایده نبو. ورم نگرد. همه حسین خان کری سیفی قازی و آموزای پیشوابو پیشوا بو. پیوکی سرحولوی زور زلامی چوزقو بایبد بو. تا خواه هست که کردیکی درسواز بو. ګرابوه فرماندی هیزي چکداري کومله براستي له هیچ شت نه اترسه روزګل توریز خونواندنی لشکري فدائياني پېښوري له توریز بو پېښوري پرسي بوې پیاڅونه وتبوې او کومل جن شي حيزم دی نه برچاوه کبر موريان تفنګي برنويا برګې د کس کوردي چکدار ناګرن امق سهره ای چینایو پېښوري زور توربو کډګل پېښواش اعدام کړه تننت روزنامې لشکري دوجمن اټش نوسې بوې پیاوی وانه تر دو جرپاتی سیدار پشرا، ولیم او بدنجی برز هر دینران، بژی کرد و کردستان، کردستان هر آزاد دکریو، لوق سبی مانعانی دکرد. لان خوش خانی صاحبلا، کاتبم، که حت مدر، و تیان کرایه برپرسی تبلیغات. سپرستی رجنمی کردستانو رادیو چکولانه کمانم دکرد. دو یاری درم با یاری کر ابو، مندلی ترکی خویی که تمانی پازدا و دبو، جوریکاری با خاین دکردی من کلا یک بوم همیشه لخک شرستانو نخواز اوانی اوانه کزور کوکو پوشته بونو اينه شان به فیز لچاو دکړ شرم دیگرتمو زور لخوم به زیاتر که زانی یک لریده درکانم بناوی علی خسروی لوانه بو روز یک مقاله کم نو بو وتم تم علی زحمت نبه پاک نویسی که تماشای کرد نه نایزانم وتم تم هر شکل نوسیب سیب کبسه وتی ناتوانم بمنداله ترک کم گو تو چونی؟ گوتي ختم خوشه کردی نازن بلا مواد باش کل نوزدکم به نوخته فرقی نبه راستی کرد ایتر حیبت و سامی جلی تازو فشوفوالم لبرچاو نما لوکارم دا نامه کم لطوریز و بوحد کدبه لهمو ازربایی جانده آواد تبلیغات بکری لداخن لسر پاکت کم نوزیه و ترکی نازنمو بومنرد نوا دوی چند روش یک پیشوه کردم فرموی باو کار من دالانیت کیشه که دوست کردوین وتم من خون با کردستانی دزانمو لاموان یکلکی ازربایی جانین پیشوا گوتی وام نزانی بو اویش گازنده نامیشین موسیم اوان ازریان لی خواستی نواکسه ویان کردو بر یارد را که امو ازربایی جانی دولت دا بکیوینه و تویجی پیکاتن حاجی بابا شیخ منافی کریمیو من یا نرده سقز نینر هاتن که داگل رزمارا قصب کن. زبیحی و صدر الاسلامیش دویه هاتن کا پیکاتن که دولات بانو سردشتو تکاب چول بکا. پیشوریش زنگان بجی بیاله. تا او کارش دکری ریگه بدره که ازوقه بولشکری بانه بنیرن و کرد ریگه لیه نگرن. کاروانی ازوقه دبوایه با اگداری منو داگل من بچیو منو زبیحی چاو من لبر کردنی بیه. نو کوچکی شریط ده به یعنی گوتین و بر حاضر کدیت من کجیت مان ترومبیل من نشالم ندراون من یومن پیمان داګرت کته ناروکی چی بار نبینی قبول نکین پش چقه زور صدر الاسلام کبریه پېښو و سروکی وټویشکران بو وتی بارچیان ته د انی جګل ازوقی خوردمنیو من امر دکم کنے بشکن ناچار بو امر ملم وان دغل دا باران چومه بانو لمال افسرک بناوی ستوان رنز بر من خوطه بوم لستو لستوان دکراب. لاجواب یک دا گوتی بلیت تانکی کهان دنو باران دا هینوه. زانیم خیانه تکی گوره بدستی من پیکاتو خطه لصدر الاسلام بوا. دا خی اوام دخوارد که بوچی لرگه با پیش مرگه بروت کردن نداو دشمتوانی. با فرمانی پیشوا معلم نبوکانو هاته ساب لاغ. کور یکم هبو بنایوی شیرکو تمانی چوار منگ حدیثا دغه صدر الاسلام زبیحی او حاجی حمد اغه شیخ خلی بر اکرم بو صدر الاسلام دوه دوه رايوه بردياني نه مالک لسغزو پاسوانې چان ل درګه د نابوین امجر د بو یک لمنو زبیحی ارغل کاروان ازوقه بچینه بانه وتم زبیحی تو زور جرح حبس کراوی لره دمانگرن لرهغه وا خود در باس کو حولک بو ایمبدت هنجی راوین زبیحی لری راایخر دبو دصابلاغه وه هندګ درویان با کاکاغه نایکو راننده چې ارمنی دا بونردبوین ګوزو ګنبد حت نصر منو دا و چک د نانین لیکردین من کلاوی چې خوینګرمو بیا تجربه بومو لامو بو چک لیساندن زور شرما د ماشی خمنه دا افسرکم ګل د بېب کوجری مدمن چې ملقدی بکنو افسرکوتی باشا لته ناسنم د ایواره دا هاته ولامن وتی تو حز دکې بیت شه نوشار ور په کوبروین چوینه قرغ چمې سقز زور به نرمي وتی من کوردې کرما شانیم تو شم زور و بردل کوتو که بو ازادي ګل حاول ده دی پلام هیڅ تا زور خالي من پرکیاشین فکر دایا بدمانچه دت کوشتم دروبري شار پتر لچور هزار سربازي تدايا در چونت محال بو دین کوشتي و او جار دولت هزاران افسري لمن زلتری که به کوشتان دهاو ګوش نادته کله عاقل ترم حیف لدس بچی چا و نور فرصت به و دنگ مکه هل امر وحبستان دکن او دی بمکری یاریدته ددم خلاصه خابموا کک و چوینه بازار کتب داستان بکری بلرمو ل زندان د خومی پی بخاف لینم افسرکه نووی ناصر یان ناصری بو بر دمه دوکان کتب فروشک بناوی کلهی کبروتی هر کتبی شوی به دو قران به امانت ددم او خویلی تو را کردو پیوت بی انصاف ایجاریک تپ شوی چوار شاییه بلام ناچار قبولم کردو چند چیروک یکم ورگرد هرو شوا حاجی حمد اغاو کهک که اغاو میناسی شافیرو منیان گردو لما لکی نزیک چمی سخزده حب سیان کردینو شازده سربازیان لسر دانند که آگه در من بن پولکش یان که بو نرده بون ندائنه افسره کرده که دوی چند روشه که تلمانه اوتی چونکه منیان لسپرستی او گری وا، افسر که ترها هات سرمان بنایی نسیر زده، آذربایجانی بود. دیار بو ددل دل لجیری پیش بو، زور کرده کی باش بو، اویج زوری نبرد کنم دیتا وا، یک بناوی سروان بی در بخت، حتی چوی دکر که همو جانی گال تا وگ بو، هر چند بنی شوانه همو دو ساعت خبریان دکر دین او دیان بج دین، خواردن من زور پدشان بو، بیانی هنجینو کرو، نهار و شام گشت و برنج بو. پنج ڕۆژی حوالی زورم حپس لبرگران دهد. بلام عادتم پیگرتو پشوم حتا و سرخو. قصیده بردیم لبردکل. روژانه هموی بگالتاو قصی قوارم راده بوارد. لو سربازه پازدارانه اکیخ چشکلی نر بو. اکی اک کین لوری سلطانه باد بو. کده گود من بو متا کاملا. هر خبرو باسگل شارده بویا پیده گوتین. کتیبی بوده گوریمه و بوده هنائن. شازدا سربازیان لا حبس خانه ده که بو لس دانابون که سرغروبان چی لور گور بو غلطی خوشم بو سرغروبان لور بو جاره گوتی هر کس هر چی بسرد لناو وتم نخیر نه وسراوه د کو بی خو نو توش هیچ نه وسراوه ک نه وسراو الا من انکار لدا خان دستی خوید و جره موه کجاریک ازرائیل چوتہ دوکانی تاجر تاجر بردوئے تیوا مال خوی ازرائیل د می لنانو چیشت نه داوا کابرا شوندی داوا کدبین نمشیبکا ازرائیل کر فری خواردو قام چی کی تر لخوی داو نمشیکرد روژ یک خواگوتی بروج او کابرا پکجا کابرا گوتی تو نمہ کیمنه نکردوا شرم بکا هیچ نہ به مورته کم بدا ازرائیل خو گاند ولای خدا نقل فری خوارد نخی بو جراو خواه گوتي باشا چل سال مولاتی بدا بلام جارکیتر او کریتی مکا روژیک او دستکمان سیری لی ریا بون پیسایی گئی بوا بلندهی دیواری پشتوا سروان بیدار بخت هات بودیدنی من وتم او چون مشقی انجیویی بسر بازاندکن وتی دبیل دو هزار میتر خالی رشی نو هدف بپیکی وتم او سر بازانه مشقیان یان تازه هاتون ولمی دایو وتی، هیچیان لچوار سال کمتر نیه کلیران لبر شرعه و هشتو من منیش منش پیامود دوره بابچین سری اودست کونی تا تاقونی سرباز بستکن زوریش لخالی هدف گوره تره سرباز یک نتوانی او کونی گوره بپیکی مشقی چی و فربونی چی زور پی بانگی سرگروه بانی کن فلان فلان شده الان دبی بدو تنک او بینی لچوم راو بیشویوا یعن دبی بیلی سیوا آخری سگروبان لچوم آویه ناو و وا. زنی من کشتر لنجان دولت و پیش وری حال گیر سوا. بیست من کتایزش کوا. راجکاتن ملای حاکمی نظامی کسر هنگ غفاری بو. چوار سرباز لپیش موا بتفنگو چوار لپشت موا با کلبشکرایو بردن مو. نیازکنیان لسرقانم راگرت بو. با کلانک ده حتی چن مالکی سقزی در یاندا او چونه بری چې کولانه کوه عامدباش راوستن لمو ابو که شنو غلطم پیدا کن چام د خسته بو هرګشت ملن هموین کلاینده تر سلاویش گرمی ان لیکردم سرباز تیان خورین حالاتن او قدر گرفتنی منالن زور دلګرمی کردم چومله سرنګ همدغه سرای للابو گرچه دزبندیان کرد مول لبرم هست تا جایی نردی چاین نردي چین باهنم. هم داغا باسی خویکرد که چون ملکومالی شو، چون ل شپرستی لی نداوا. سرهنگو تی، تو دزانی از جان من گرتوا. قازیش یک دو روزی تر ده بی. شت یکبار رج نمای اطلاع بنویسه که قاضی بزرگ توی کرد واتا کملا، بالکل مردن رزگارد بی. دو بسته از کیناسشی ل سرمیزکدان اوتی، وابزنم پولاتنیا، امشبو تو. وتم. جنابی سرهنگ قاضی بزور نیکردو ما کاملا برلو کاملا بوم حمد باسی لباسی خویده درسی که دادم لکرت پرستی پشیمانیمو پشیمان ناب مو گناهی منش بطو با اطلاعاتو با قوام السلطناش نبخش دره گراندی ورن بیبن بن نی هش کم بخو مو تیرج نیوی زور پیست بیدمو حراشی کرد دزبن لدست حت مو حپس خانکم روجگل سر داروی خون بر دیان حمام دیسان هشت سرباز بردیانمو دیان حمام دستیان کردمو ل درگ راستان کدوای چارجیک دم در ریشم زور هات بو تیخ ریشتاشین ممنوع بو کابره کمدی ل حمام نسیم و کروجگل باوان پیکاو آش او آو خوی ل جل کردم و تماسش این کردم برا بر بگیرایش بم بونم دوئنی سوئن دی خواهد کنات ناسم کپیم گود تو بوی بو و خوا از انی او برام بوو من افسری ارتشم بخوی ریشی تعشیمو زور او زرخوای کن که هات مدر لحمام کابرا کی سی سکی کورته من نافع مسهر شاعرم هاتم بدبینم اتر سرباز نه نهشت بی دوینمو او حسته تا 13 هر لدل داماوا لسرتای دامزرانی دولت عراق کدا دگا بدست ملایان او بوو ظل نافع مسهر هلج فقیتی قردو من بو قرآن قران باش عيدي كودي ترجمه ناكم الا سوره القارعه دسبدك الكوتينر والكوتينر نا زاني شي الكوتينر روجي كخلق ابن ببابولي سل شيوال وكوان ابن بخوري بيشوكراو او كسي قرس بيترازوي والعيشو خوشيه او كسي سوب بيترازوي دايكي او هاويه تو نا زاني او تشيا اغري كاغرم لانجامنوسين امشرا خر دايغرم ملاي حاكم دو جه حبس دک ان جر شرګ له سر حجاری او چر رشی فقید له او تیه سرګونی خویش نه کړ جبریل هاتوه دایبنه بردستی حاکم حاکم پیدله هاتیو بو کفرت کردوا او ایش ولامین داتوه قربان جبریل ګونی هيا حاکم پیدله وس بی ادب ګونی کو او ایش لولان ددل د سوتومه هیڅ شي نه کړ بتکاو رجای خلق وازی لیدنن دو مانگ بو حپس کره بوین سروان بیدار بخت روژک هد زور کزو کنفت دیاری دادا وطی خبری زور نخوشم پیه زور خمبرم بویا وتم وطم اخرین لیره دمان کجن یان دمان نیر نتارن دبلای چیا؟ گوتی اوام رو آزاد نو نانی رو تان ندینی بویش کزم کتازه مزلیسی گپو گلتی دگل اوام باور باورمان نکرد وتم دسمال ای غفاری اجازه درام غفاری و تی مبلی ازادن و تم کوابی دت ونم بتسالحوا خزم لوهن و تی نه دبی اما به حرمت بر رتهام کینوا تجیشتم کبردانی راستینیو هردم گر نوا شما منزله حمدامینا غاو قاسم مقال ساقز که هردو برای حزبی بون بیان بو گر م و کلاپش کنی ازربایجان بیشواری و زور له درودستی حالتون با روسیا خازش هدوت حمامیانو به شرط خود تسليم دولت کردو. او دا ویلا سرتیب همایونی کردو ک ایوه بربدن با کوتری نامه بردا فرمان ازادی حتوه وتيان ذبیحیش پنای با کنسولګری روس له ورمه بردوه رانګرتوه دغل سید احمدی سید طهو دلشاد با منشینی حزبي رای کردو بو عراقو راديو لندن خبري داوه وتم یو نا ترسن حمادمین دستي بو سوپره داش ویی همون روزی گذارش یک منوسی و رنگا پربوس و پببن من هواوی دولت بم قاسم اقاویی اگر خازین نفوت آبایم همو من دفوتان برایتی خبر و باسی کی دلت زین بود لوحبسده از زورم قرضی اجاره کتاب کوتب و سر چو ما دوکانی کلی پیمود که حسابت صندق گریا ویی بریم رد بامو اول روزم ندی با یک شایی پولم نهی اول روزش لترسی افسرکه دعای او پول ازیادی امکد پاشنیورو کده بو سفر بکینو چاونوری ترومبیل بوین سرتیب خومایونی حاتو احواله چی پرسم غتم من دمان شکم ل سندراوه حزدا کم بمنه نو وتی جابو چیتا خو ایمه زورزو شکل همو کرد دستانین وتم بل او دم قید دنیا بل ان استاب من شرمه بتن یا لچکرا بم غتی دمان شکی بدنه و د من سار ترومبیلی او الخانی دبم خاسم اغاو حمدامین اغاو هجار سواری ماشینی من ببنو لبوکان یکتر دبینین جگل ایمه سیان سربازی که راندو افسری که سر رشتداری زو برو بوکان هاتین لرگه توشی پول پولی ستی و دو ستی لفدائیانی پیشوری دبوین که کرد فنجان لیساند بونو با کامال زور زور دگریانو یان حسین یاندگو افسری سر رشتداری دیگو من شاعرم آغایان بوتین اوش شعره حالی پیچم که نمونیک لشعری خومی بو بخیوان مغود ترجمه بکم. اوام بو خوانده و کدال ام ارولا ناموست وک خزمکاند نده بشکر دستم داماند شرف گوهرا قیمتی نایا دویت ارو رشی هر دوک دنیایا او کسی پیاوا بو خاکو آوی روح دانی و بچاک بمینه ناوی ند بیست و واتی زانه سرزمین مردان مردن نک حیزانه جین ترجمه کرد افریمی لکردم منیش مبستم لو دعای بو که ببیش شرم شنازی با خیانت بجلی خویندکن نو جی شوان لبوکان توشی سرتیب همایونی بوینوا گوتي به هزار لما لی قسماغا بی سبی همومان دا چینم حباد چوم منزلی قسماغا کلمال عبدالله برامی بو که که همزی کونه حوالم هد گوتي ولی لما من منبخواه وتم وابزانم قاسمغه رناده چونكه واديره مني پيس پيراوه به هيچ كيودا نچم حمزه داوىله قاسمغه كرت كمن بده ته مغ لخوي قاسمغه اوتي ليرش نوين هي بابيت حمزه اوتي من بل ندم کسبي به مولايتو اگر وانه با من اعدام كن قاسمغه اوتي قيد ني بابيت هرچو ني وا حمزه هلي پيشام كر خود خلاص كه زوري حول ده وتم څومکه تو بو یزم نم هرگیز راناکم با ابزانین چوندبه با خیال خو م وند نابو کلا میاندوا او اجازه وربرم بثم بپیو شونی عبد الله کلا توریز دیخویند خوین او ساله تورز خو م شرم وک شر چی گوریو نام باعی دجال هم زهتی نو لقاسم قا سفر لید دراو لشکر بر رو سابل قدرتیو آشاعریشان دجال دشون لقاسم قا پرسی کوکاکا رحمان و توی نخواشوال جندي شيخ لره و تم نتونم بیبینم لپاش شویک برد جواب من و توی منوام پی بشه بشی لای کاکا رحمانو پی بلي بت نریتا قرقیز لای احمد قاو هرگاه با مصلحت منزاني دتوانی بی سابلق امر دجال لشکر می. هر او وای او پیاوی که وقتی خوی خبری خیانه تی دی با کریانی دابومه گرژه لأسبده داب بزیو آوزنگی گرتو وطی ورسوار باو بچو شیخ لرلبن لیوانه ووطی منم اسپم نایوه و ایتر خود دزانی سوار بومو هر لکولانی حمامو و کرد مغار لشار کود روم کرده شیخلر لرگوام حل کرد که احمد آغای قراغویز زوری خرابه دا گل دولت کردوه. منیشی خوش نوه. قسم آغا من ببم دیاری که دستو احمد بمگری و گناهی به حوی منو ببخشری. با حمیدم ام خیالم راست نبوبه بلام وای بوچوبوم. شکرانی عزیز لرده حتی ناکوتایی بشی چوارده همین خیل نوی کتبی چشتی مجیوری هجاری مکوریانی تا بشی کتر همولاکتان بشادی بجین